منزده السلطنه تمام شب را آقیل چشم و لفچان در حضور منیف دیوان نشست و دهان فقط به زخم زبان گشود. بعد از آنکه زن منیف دیوان به قصد استراحت از جمع خداوزی کرد و به اتاق خواب رفت، حملات منزده السلطنه هم میپرباتر شد. یکی به این زنی که خواچپرست بگه اینطوری اون شکم وامونده رو به رخ همه نکشه. کار تخم دلدله. این خارا اینجا قباحت داره. ملی زمان فوراً به و روجو صحبت را به دست گرم چه مجالازه پوزه این نانجر خانم اگه شکر مجالو نمیدا کی میفهمید آبستن خواهد منیر دیوان خنده پرسدار را رها کرد از منظر سطن پرسید. حاملی قباحت داره؟ در آمریک مایه مباهاته چی در آمریک نوبرش آورده اینجا ممالک محروس هست زنا شرمه هیا دارن واتی پاکرسه فرنگی ننداز مانبر دوله با شوخی واسطه شد. والا اگه شکم منم پر بود ما یه روسفی دیگر اکبر خانم شد. علی اکبر خان در میان خنده دیگران کفت تردید بی تردید خب این خانمان شد. خانم شما در کار تجارت عتیقا وارده؟ نه چندان علاوه خودش شاقل مخبر و عکاس دیگه فرصتی برای کار دیگه براش نیست. و با خنده افزود اگه سریع به مقازای آنتیک ما بزنه برای بریدن بند است. مجسمه یا تابلویی بر تزیین خانه میبره. زن بسیار صاحب زوغیه. منظر سطحانه با غیز گوه اینا رو لازم نکرده بگی. خوب روشنه که دامن پس تو رو بالا زده آقا چون. منبر و دوله با لحنگه گویی بین این دو مکالمه جاریست مجادله وارد گفته شد. چرا دامن پس منظر جان؟ دامن پیش وگرنه که شکمش بالا نمیامر. وقتی صدای خنده اعباز خان و شمسلطنه هم بلند شد من از او سلطنه مثل برج بارود خطاب به و گفت هر, هر و ماشرا یا خود هیام خوب چیزیه مالی زمان با اینکه کماکان نگران بود که جدل خواهر و برادر به مرحله غیر قابل جبران برسد بیختار اختار گفت وابسم الله حالا ما با این حیای قلابی کجا رو کردیم کنج خونمون نشستیم تخمه میشکنیم غیبت میکنیم کاری هم نمیاد امون کار باشه من عزلتنه خشف را متوجه خواهر کرد. خوشم باشه. والا ملی تو حرفا میزنی که تو قدی هیچ عطاری پیدا نمیشه شده آخر زمون. فقط منتخره دجالش مگه زن غیر خانه داری یا داری خالی ام باید بکنه. منش دیوان دوباره با خنده‌ای بلند جواب داد تو که نایزان بودی چرا آقا داییت به اسب مرد؟ تو من دوازده 12 فرزند دوندوردی. چند تا رو حفظ کردی؟ پس بدون که سن ایسهت معرفت این کارا را از شما بهتر میکنن. شما من از نگذاشت حرف منیف دیوان به آخر برسد هم چشم قره را تیزتر کرد و هم لب و لنج ورشیده را به عطاب تون تر باز خرسه خب خونسار حالا دیگه مضمونم کوک میکنه سرکوفت دختر رخشور فرنگی رو به من میزنه راستی راستی که خوشم باشه نه جانم لوله این کار آفتابره میکنه اما قطر هر کدوم تو گروه گذاشتن معلوم شه. یه باره که بگم مرز و قضا و قدر و هرچی جوی و جرزی را آسمونی که بوده تحصیل منه. ولی زمان باز سعی کرد میانه را بگیرد و این بار به منی افتیوان کفاند. آتیشو که با آتیش نمیشه خوب موشت شما برادری کنیم کتابی بیاید منیخ دیوان خنده را موقوف کرد با لحن جدی گفت خواری و برادری به جای خود اما ما که جناق دلخان اگه شدیم هر چی منظبه جواب نگیره و روشو به منزه سلطنتی کرده داد دا بله مرض همه جای عالم است از ماه تا ماهی اما زن عالم فهمیده به جای تسلیم در مقابل قضا و قدر حفظ و سهر را مراعات میکنه چرا تا تو حرف حق میشنی میخوای پوستین آدم به دری با صراحت نداری از نگاه من از آتش می‌بارید. و از جنباندن سریع تن پیدا بود که خودش را برای زدن ضربتی کاری آماده می ولی زمان و منبر دوله از سر عجز به هم چشم دوختند و ساکت ماندند عباس خان که در کشیدن سیگار برگ و مصرف بیسکی مالت مختصری زیاد روی کرده بود فقط در خنده شریک جمع بود و برای ایجاد تعادل در مجلس زحمتی به خود نمیداد. شمسلطنه با نرمشی که این روزها با آن دست یافت بود در رفع قائل موفقیت چندانی نداشت عبدالله خان هم که اجازه مداخله به خود نمیداد فقط امیر خان میان مادر و دایش حائل شد و پرسید خان دایی فرنگ به نظر شما بهتره یا ینگ دنیا شمسلطنه به اشاره ملی زمان شروع به گرداندن ظرف شکر پنیر کرد ولی اکبر خان در جواب به چشمان نگران منور الدوله صحبت مسافران را کشید حال میزاجی شاه چطور بود ملی زمان باز جانی تازه گرفت و صحبت علی خان را دنبال ده آره والله خان داداشه دو کلمه از دختر و داماد من بگین جاشون سبز من از سلطنه اگر زهرش را نمیری خود مصموم میشد. ولی در یافتن کلمات نیشواری که پوست را هر قدر کلوفت بشگافت و بسوزاند و نفوذ کند درمانده بود صدا را بلند کرد و گفت هم به دهن آدم هر زدگون گذاشتن با سجدن رفتنه علی اکبر خان که برخلاف خانم ها منتظر حمله مجدد نبود کلاف و بیختب خانم منظر سلطنه پیس لاه استرزانیست بر دوله بلافاصله وارده معرکه شد با باخنده گفت بابا منظر جان مگه نمیخوای ملیه آشتی خاره را بندازه میخواست حلوا درست کنه من رعشو زدم گفتم به یک حلیم بوغلمون پر روغن و دارشین صحبه کلی سهر به ما بده که خاصیت ها داره بالا منی دیوان با حضت همو بله بله حلیم من چند ساله نخوردم. من مند میدان سلحم و حلیم. و قا, قا خودش زودتر از دیگران بلند شد اضافه کرد. حالا که صحبت صلح شد. خان نایب که چرا ساکته؟ یه مختصری از اوضاع جنگ بر ما بگود آماد. من میخوام از اوضاع مملکت اطلاع حاصل کنم. علی اکبر خانم پیل گرفت. منم مدتی منتظر فرصتم پای صحبت خان چه خبرها این اختشاش تا که ادامه داره؟ شمسلطنه با فشار نرم آره شوهر را تشویق به حرف زدن کرد و نایب عبدالله اول با تردید رشته کلام رو به دست گرفت وقتی تبجه سمیمانه دیوان و علیه اتبرخان را دید با رغبت بیشتر به حکایت ادامه داد. از خشون محمد علی نیرزا گفت و شاه صوان و کرت کلهر که در کنار سردارانو می جنگیدند از جنگ میان تفنگداران قوام و سولت دولی قشقایی در جنوب از نظم و سلاح جاندارما و رقابت میان آنها و غذاقان منیف دیوان پرسید این ست چطور چطور ای بود؟ در تبریز که بودیم از تاکتیک های جنگی او زیاد صحبت بود نایب عبدالله جواب داد سالار رشید، پرهیبت رست بشیم بود قبای خصف رو به داخل شهر بکشه در بکشه ب و مدتی از مزایا و خطرات این تکتیک جنگی سخن گفت و به آخرین نبرد و با قوای خاجی سمت شجاع و رسید سمت از طرف شام میره به محله حکم و اونجا رو تسخیر میکنه قوا رو در اطراف و اکناف میذار و میده براش ایک سندلی و وسط میدون بذارن گلیون رو زیر لب میگه من برای حفظ اسلام مهاربه میکنم یه ده مفسدین و لام از میخوان دین مبین رو پامار کن. امارو مغلولن به تهران خواهم از اون طرف خبر به صدارخان مثل چه نشستی که خان محبته وسیع رو فعت کرده رجز نمی‌کنه سردار از سمت امو زین الدین رو به حکم آبادا ميوفت از دیزج به اون طرف سوارای حاج سمدوزی رو توپ میگی روجه رو دو سه تا توپ که میونه سوارا میندازه همه پا رو فرار میذارن حاج سمد خان با شکر قایم کشیدن رجز خونیه که میبینه سواروش به تغلط دادن چه خبره میگن ست ترخان شنیدن خبر همون افتادن قلیون در دست سمتخان شجا دوله همون قلیون می می سمت خانم و میشتنه خود سمتخان هم فرار رو به قرار ترجیم ده سوار هست میتازونه علیکبرخان رو به شمسلطانی گفت شمسی غلط نکنم شوهر زیاد تو قربخان ها پای نقل نقلانش ببین باچه شیرینی سر ما رو گرم کرد شمسالدین با رضایت لبخند زد عبد خان با عجله گفت اینجاشو بشنوی آبدار باشی حاج سمد اون روز به دست مجاهدین می ستارخان میافت خلاصه کنم نهار اون روز حجی رو سالار نوش جون میکنه خنده ای اکبر خان و منیف دیوان بلند شد و منیف دیوان پرسید چرا خان به مثل باسکتبال عنایتی نشون نداد عبد الله جواب خیر اختلافی میونشون نبود منتها وقتی فوج نجات از ستارخان توپ میخواد میگه نمیدم دلیلی که میاره اینه می خام و جنگ ندیده این. میرین امریکایی رو به کشتن میدین توپان بر دشمن میذارین فرار میکنین. یک برخان گفت شندان بیرانه گفته. حالا عبدالله خان از یپر ما ارشد برمون بگو. و عبدالله خان به شرح جزیات جنگی پرداخت که در خلوت و خیال هم بارها تجربهش کرد عرشت دوله از کدام را به امام جعفر رسید. میزان تلفات و خساراتی که به بختیاری ها وارد گرد چه بود یه خان آنها را از چه کوره راهی به جناه راست قوای ارشد ترستاد کجای پای سردار تیر خورد و چرا اگر نخورده بود اسیر نمیشد. چطور محمد علی میرزا با اسم خلیل بقدادی توپا را به عنوان آب معدنی و مال التجاره از دریا با کشتی و بور داد و ارشد چگونه این داستان را در اصارت تعریف کرد؟ چرا از جوخه اعدام که متشکل از هفت ژاندارم بود فقط یک تیر او اصابت کرد؟ با چه شهامتی در انتظار ماند و تا چه حد تا دم واپسین به سلطان مخلوع و وفادار؟ بعد از اصابت فشنگ اول، تا تشکیل جوخه بعدی چطور بر زانو بلند شد و زندباد با هممد علی شاه گفت علی اکبرخان گفت وجه نمیدونستم رحمت الله علی. کاش با ما منده بود حالا به نظر شما عبدالله خان این اختشاشات رو چطور میشه مرتفع کرد بعض و خیمه ما همه خواهان حفظ مشروطه ایم ولی عوام از تعدی و اجحاف و ناامنی و قحطی به جان آمدن باید گرد؟ رای عبدالله جواب داد فقط یک سردار، یک سردار کارامت چاری درد. این مملکت به نادری احتیاج داره و نه اون سرش صحراست. مذاکرات به وضع جهانی کشید و آغاز جنگ میان دولتین ایتالیا و عثمانی. اون دیوان گفت اگه آتش جنگ به همه قاره قدیم سرایت کنه اوزا قمر در اقرب خواهد بود. علی اکبر خان دلداری داد بگه دنیا که ساری نمیشه منیف جنگ رو شمشیر میکنه سودار و پول تا وقتی سرمایه هست سود هم هست بله ولی اگر قروب میدان حرب بشه به تجارت لطمات زیاد میخوره خانم ها سبای شمسلطنه که در کنار شوهر روی نینکت نشسته بود در طرف دیگر اتاق پذیرایی گرد بودند و به صحبت آقایان توجهی نداشتند امیر خان بر دستی مبل خال منبرش نشسته بود خ در حد فاصله میان زنها و مردها روی صندلی پینکی می رفت. منظر بدن را می جنباند و از لای دندان و قیزش را بیرون می ریخت. تمام هم ملی زمان مصروف آن بود که به کمک منبر دوله منظر سلطن را از شیطان پیاده کند به نجوان گفت، ببین خواهد، باید تا یکی دو روز دیگه به سلامتی بفرستی پی عروست منبر دوله اضافه کرد، کالسکی مادره. میل خودت آزیم بندیش کن روانش کن منرزج ولی زمان ادامه داد دیگه این بهتر اما من میگم آزینبندی دزار بر برهته زن خان داداش از سلطنتی شعله چشپا را متوجه خواهرش کرد و آمد جوابی تیز و تند بدهد ولی ملی زمان لبگزه کرد و گفت گوش بده ق دو دقیقه کینه و فراموش کن گوش بده مگه نمیخوای جشنی که میگیری تا و همتا نداشته باشه فقط پس گوش بده این زن صاحب صریح است دنیا دیده است کارایی ازش میاد که از اسمان نمیاد بین خود و خدا حالا که غریبه ای میون ما نیست کاری بلد که ما بلد نیستیم برای چراغونی برای پذیرایی برای مهمون داری دوله نبردوله با تعیز دستین خوب فکری کافیه دو کلمه حرف مهربون است و از زد. تا با دل و جان دست بالا بزنه کارا انجام بده درو دشت خونه رو بکنه بهشت برین من دیدم تو فرنگ دیگه چه قادم حس میکنه والا منم روغی و دوت از شاگردا رو میفرستم کمکش ملی زمان ادامه داد اوسو حسن منور میشه سر آشپز آشپزای من و فخری هم که هستم با زهرا سلطان تو همه به فرمان اوسو حسن برای خدمت کردن مستخدم خونی خونه شازده کلا و این و خدمه خود من منفرم که چند نفر میفرسته همه کمر بستی ورداده گفت البته صد البته همه در اختیارش برای خون تکونی و بشور به مار اولیه میگم چند تا رعیت از ده اما فکر این که کالسکه و خونه رو آنجل خانم آزیم بندی کنه والا بی بدیلی مونست ببین چه محشری بشه همه انگوش به دهن جشنت بمونه. ولی زمان گفت اگه از در سول با و زنش درای من همین فردا میشینم با آنجل خانم حرفا رو همچین میزنم و تبوم میکنم هرچی گل و منگل لازم داشته باشه تلگرافی از فخری رو شازده میخوام برامون رفونه کنه. تن از و سلطنه چند لحظهای بود از تکان بازمانده بود و دست پر پرانگشترش بر دسته پهن صندلی آرام گرفته بود ولی زمان که متوجه تغییرات حالت خواهر بود بیوقفه دنبال رو گرفت بسبرم داداشو بیارم روی هما ببوسین قایلا خصم کنین به میمنه جشنی که در پیش داریخو این کار بکن برای همه شگون داریم منظر سطحانه گفت پس این آنژل مادام نیست پادامه گذاشتین که من تله بندسین و شروع به ریز ریز خندیدن کرد منبر و دوله با صدای بلند و زوغ تمارز کرد مونیف دیوان مونیف دیوان منظر دلش میخواد که شما در عروسی شب بالا باشین فعلا همه شکما ها رو صابون بزنین برای آشتی خاره ملی تا انشالله برسیم به عروسی